فصل نان اثر علی اشرف درویشیان با صدای علی دنیاوی کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه داستان اول خره نفتی آقای مدیر که کارنامه من را داد من به طرف خانه دویدم همانطور طور که سرم پایین بود ناگهان تو شکم مردی خوردم که طبقی خالی روی سرش بود کارنامه از دستم توی خاکها افتاد با عجله برش داشتم دوان دوان به خانه آمدم ننه به خانه های مردم برای رختشوییی رفته بود. ظهر که شد با دستهای قرمز و نازکش آمد. خسته بود. چشمهایش تبدار و خوابآلود بود. پشیمان شدم که نشان بدهم برای شب گذاشتم. شب که بابا آمد اتاق را پر از بوی پا و بوی ترشیده نان خمیر کرد. همیشه نان خمیر میخرید تا, تا دلمان را بگیرد. چار تا خیار زرد بزرگ هم خریده بود نشستیم پای سفره، ننه خیارها را پوست کند و چرخی چرخی برید و روی نان گذاشت نان و خیار خوردیم بعد پوست خیارها را نمک زدیم و خوردیم بابا هم یواشکی طوری که ما نبینیم از پوستها خورد بعد لغمش را تو نمک زد و گفت یا مولام علی رو کرد به ننه و گفت حضرت علی علیه السلام همیشه نان و نمک میخورد ننه گفت: قربانت بشم مولا جان. شکرن شکر ای کریم. نان که تمام شد، بابا دستش را رو به سقف گرفت و با هم دعا خواندیم. الهی شکر، ای خدا برامان بساز، روزی من را بده، نانمان را بده. بابا را نکش، ننه را نکش، قرضمان را بده. ناخوشمان نکنه ای خدا. پاتی خواهر کوچکم با پوست خیاری که در دست لاغر و کوچکش بود به سقف اشاره کرد و در حالی که تو که زبان می گرفت گفت ای خدا آب نبات هم بده استخان هم بده اسخر خندید و با چشم قره بابا ساکت شد آرامت بگیره ساتور به شکم خورده بابا به سفره اشاره کرد و به ننه گفت زیادش کن و ننه سفره را جمع کرد بابا که آروغش را زد رفتم و کارنامه را آوردم دادم دستش با کور سوادی که داشت به زحمت توانست اسم خودم و خودش را پیدا کند نام شریف ولی شهرت زحمتکش فرزند سیفلی اسم خودش را که خواند لبهایش را جمع کرد و ابروهای پرپشتش را بالا برد مثل وقتی که کتاب دعا می‌خواند خوشش آمده بود دوباره خواند فرزند سیفلی و به ننه گفت ماشالله شده کلاس چار اسخر سرش را پایین انداخته بود و جعبه کبریت خالی را در هاشیه ی گلیم حرکت می داد و صدای اتومبیل در می آفرد. کلاس دوم بود شاید رفوزه شده بود که حرف نمی زد. بابا به اسخر گفت تو چه کردی تنبل؟ اسخر دستش لرزید ماشینش از جاده خارج شد و کبوتر روی گریم را زیر گرفت بابا رو کرد به من و گفت فردا باید بری کار از هم میره بلیت فروشی ننه گفت علی کجا بره؟ بابا گفت میبرم پیش حاجی رضا نفت فروش ننه گفت ای هی بدبخت به خودمان هرچی پول داریم باید بدیم صابون بخریم تا پیرهن و شلوارشه بشوریم بابا گفت بی خودی بر نزن پس پارسال خوب بود؟ شده بود مثل سگ سوزن خورده؟ آخرش هرچی در آورد دادیم کلاشو رو باره کرد ننه گفت پس ثوابش چه؟ او همه دعاها که مردم میکردن هم برای خودمان خوب بود و هم برای مردهامان. بابا گفت راست میگی استقفر الله خدا یا توبه ولی خب قول دادم که تعطیلی ببرمش پیش آجی رضا کار زیادی نداره می در دکان و حساب و کتاب میکنه ننه گفت من کارم نیست. هر بلایی سرش میاری بیار. بابا اخم کرد و حرفی نزد. دهن بابا که برای خمیازه باز شد ننه رخت خواب انداخت. رفتیم تو جا. دیگر حرفی نزدیم. صدای خورخور بابام شد یک تیاره و به خوابم آمد. خیرالله با صورت زرد و دماغ کشیده مثل کسی که کنار گوری نشسته باشد در دکان نشسته بود و چپوق میکشید. خر بزرگی رو هم بسته بود به تیر چراغ. خر چرک بود. خاک و نفت روی پوستش ماسیده بود. چرت میزد. توبرش به گردنش آویزان بود. هیچ نمیخورد. فقط گاهی سرفه کرد و کاها را در توبره باد میداد. من نشسته بودم روی چوتی در دکان. آفتاب اوایل تابستان میزد روی خاکهای جلو دکان و بوی نفت داغ و خاک سوخته را بلند میکرد توی دکان بشگه های نفت کنار هم چیده شده بود. روی هر بشکه شیری نشسته بود که روی پشتش آتش باز کرده بودند. خیرالله تا آن وقت دو سه بار با خر نفت برده بود و من تنها مانده بودم و روی دفترچهی که حاجی داده بود تعداد پیتها را نوشته بودم بار آخر که خیر آمد خر را به تیر چراغ بست پکر بود دائم سراغ خر می رفت و به سر و گوشش دست می کشید. خر اصحال گرفته بود زانوهایش می لرزید و کم کم خم می شد نزدیک ظهر پیرمردی که یک دستش به کمرش بود با عصا از در دکان میگذشت خیرالله را که دید پکر نشسته گفت ها داش خیرالله خدا بد نده چه شده خیرالله با بغض گفت بد نبینی والا مش بی ادبیه خر حاجی وضعش خرابه پر روتان گلاب بیرون روی گرفته مشداود گفت از کی تا حالا خیرالله گفت از صبح زودی مشداود گفت ایوی نداره داشی، این که ازا نداره علاجش یک پنجاه کشمشه زود باش معطل نکن و با سرفه به راه افتاد خیرالله الله کشمش را خرید و آمد خر را برد توی زیرزمین دکان بعد از مدتی مرا صدا زد و گفت این کشمش را بگیر و به خر بده تا من برم در دکان شاید کسی نفت خواست خودم براش ببرم زیرزمین تاریک بود بوی پهن و پوسیدگی میداد، بوی نفت میداد. خر ناله میکرد، مثل آدم، مثل بابام وقتی که دل درد کهنه به سراغش میآمد. چشمام که به تاریکی عادت کرد، دیدمش. دراز کشیده بود، دندانهای زرد و سیاهش را به هم میفشورد و صدایی مثل جویدن لاستیک از دهانش بیرون میآمد. با ترس دو سه مشت کشمش توی دهانش ریختم. دستم که به لب و دندانهایش خورد بیشتر ترسیدم یک مشت هم خودم خوردم کشمش شیرین و خوشمزه بود کسی مرا نمیدید گلویم از شیرینی به هم می چسبید. خر دست و پا میزد چیز لزجی از دهانش بیرون میریخت نالههایش بلندتر شده بود ترس برم داشت بیرون آمدم و خیرالله را صدا کردم خیرالله پیته نفتی را که دستش بود زمین گذاشت و هراسان به زیر زمین رفت. وقتی بیرون آمد اشک توی چشمهایش جمع شده بود. به من گفت همه ها را خورد؟ با اجری گفتم آری و پاکت خالی را نشان دادم. خیرالله دوان دوان رفت که حاجی را خبر کند. من هم نان پیچه هم را که ننه برایم گذاشته بود باز کردم. با بیمیلی آن را خوردم. بعد از ظهر دو نفر با یک گاری آمدند. حاجیم آمد. برای کرایه بردن خر مدتی چانه زدند. خر را گذاشتن روی گاری. چشم‌های خر باز منده بود. نگاهش تا دور دست می دوید. روی چشم‌هایش غبار نشسته بود. کدر بود. خیرالله چپاگش را چاق کرد و گوشه دیوار نشست. من هم روی چوتی نشستم. توبره کاه کنار تیر چراغ افتاده بود. شیرهای روی بشگاه ها هم چنان پشتشان میسوخت و بیخیال چرت میزدند. پاکت خالی گوشه دیوار افتاده بود. پسری پاکت را با پا به جلو پرت کرد. خم شد و برش داشت. پر از باد کرد و ناگهان ترکاند. خیرالله چرتش پاره شد و فوش داد. هر عمله تخم زل. عصر حاجی آمد، سقران مزدم را داد، به خانه که می یک گلک خریدم، صرفه میزدم و گلویم درد میکرد. به ننه گفتم گلویم درد میکند. گفت حتما شیرینی زیاد خوردی، پولت را دادی چه، حالا بود خورما خریدی، مگر نگفتم خیار بخر، خیار خونکه، اتاق تاریک بود، ننه پیرهن چراغ را درآورد و پایش را برد که نفت بخرد بوی عطر آبگوشت لیمو عمانی خانه همسایه اتاق من را پر کرده بود. بابام با بوی ترشیده نان آمد. به من گفت: امشب شب جمعه است. یه سوره قرآن برای من بخوان. گفتم: گلوم خیلی درد میکنه. بابام به اسقر گفت که بخواند. میدانستم که اسقر بلد نیست. بابا گلک را که دید، آن را برداشت و تکان داد و به من گفت: وقتی زیاد شد به من بدش باشد؟ گفتم باشد از دور صدای اذان می آمد. بابا صلوات فرستاد فاتی با آهنگ گوشت کوب خانه همسایه می رخصید جاده های هاشیه گلیم تاریک بود و ماشین از چراغ نداشت ننه هنوز نیامده بود شاید به او نسیه نداده بود